این داستان سفید برفی و راز قرمزی یکی بود یکی نبود زیر گنبد آبی آسمون غیر از خدا هیچ کس نبود بیوزن فقیری بود که در کلبه تک افتاده در وسط باقی زندگی می کرد. در باغ دو بوته رز رویده بود یکی روز سفید و دیگری روز قرمز پیرزن دوتا دختر داشت که شباهت زیادی به این بوته ها داشتن و به خاطر این شباهت اونا رو سفید برفی و روز قرمزی صدا می کردن. این این دوتا دختر بسیار حرف شنا بودن و کار و تلاش و خوبیشون در دنیا لنگه نداشت. البته اونا کمی با هم تفاوت داشتند. سفید برفی دختری آروم و محجوب بود. ولی روز قرمزی جا بند نمیشد و همیشه به دنبال پروانه ها و پیدا کردن گل از این مزرعه به اون مزرعه میدوید. سفید برفی معمولا در خونه پیش مادرش میموند در کار خونه بهش کمک میکرد و بعد از اینکه کارا تموم می شد براش کتاب می‌خوند. دو تا خواهر علاقه عجیبی به هم داشتن. هر بار که بیرون میرفتن دست تو دست هم قدم میزدن. یه موقعهایی سفید برفی می گفت ما دوتا هرگز از هم جدا نمیشیم روز قرمزی جواب میداد هیچ وقت تا زمانی که زنده هستیم از هم جدا نمیشیم مادرم اونا رو تشویق می کرد تا علاقهشون رو حفظ کنن و بهشون می گفت هر چیز خوبی رو که پیدا کردین بین خودتون تقسیم کنین. خواه هم واقعا این کار را انجام می دادن. دوتا خواهر غالبا برای گردش با همدیگه به جنگل می و تمشک می چیدن. اونا به هیچ حیوونی آزار نمی رسوندن. اونقدر خوب بودن که حتی حیوانای درنده هم که از کنارشون رد می بهشون کاری نداشتن. خرگوشای کوچیک از دست اونها برگ کلم می آهوا آه در کنارشون می چرخیدن. گوزنا دوروبرشون جس و خیز می کردن. و پرنده ها اطراف اونا روی شاخه های درخت ها میموندن و آواز میخوندن. حتی اگه تا دیربخت شب در جنگل میموندن، خطری اونا رو تهدید نمیکرد. گاهی روی بستری از خزه دراز میکشیدن و با خیال راحت تا صبح میخواه بودن. مادرشون اطمینان داشت که هیچ خطری متوجه اونا نیست. یه روز اونا به جنگل رفتن و شب و همونجا گذراندن. شب خوابیدن و تا قروب روز بعد بیدار نشدن وقتی چشمای خودشون رو باز کردن پسر بچه رو کنار خودشون دیدن که لباس سفید بر به تن داشت پسرک وقتی دید اونا بیدار شدن با مهربونی به اونا نگاه کرد و بدون اینکه کلامی به زبون بیاره ناگهان غیب شد وقتی بلند شدن تازه متوجه شدند که روی صخره‌ای خوابیده بودن که شیب تندی داشت و اگر در خواب قلط می‌خوردند به پایین صخره سقوط می‌کردند وقتی جریان جریانو به مادرشون گفتن مادرشون گفت که اون پسر بچه باید فرشته نگهبانی بوده که معمولا از بچه‌های خوب مواظبت می‌کنه سفید برفی و ر قرمزی کلبه مادرشون رو پوری برق میداختند که همیشه خوب و پاکیزه بود تا به سونا روز قرمزی دست گلی از گلای جور با جور کنار تختخواب مادرش میذاشت و زمسون که میشد سفید برفی آتیش روشن میکرد. بعد کتری رو پر از آب میکرد و روی اون میذاشت. کتریک جنسش از مس پرداخته شده و همیشه تمیز بود روی شله های آتیش مثل طلا می درخشید. شبایی که برف میبارید در رو میبستن و پشت در و قفل میکردن در اتاق کوچیک دور آتیش می شستن و در حالی که مادر براشون کتاب مقدس میخن اونا هم بافتنی می بافتن. یکی از شبا در آرامش خونه وقتی دور هم نشسته بودند نزدیک آتیش، برای در کمال آرامش خوابیده بود و کبوتری سفید رنگم سرشو در بین بالای خودش فرو برده بود و روی یه بلندی در اتاق به خواب فرو رفته بود. ناگهان کسی در کل زد. مادر با شنیدن صدای در صدا زد. روز قرمزی فوری برو در رو باز کن. حتما مسافر بیچاره این وقت شب بین برفا گیر کرده و احتیاج به سرپناه داره. روز قرمزی با عجله رفت و در رو باز کرد. چشمت روز بد نبینه. با باز کردن در به جای یه مسافر بیچاره راه گم کرده خرس گندهی با کله سیاهش وارد اتاق شد. روز قرمزی با دیدن خرس جیغ زد و فریاد زد و خودشو به عقب انداخت. بر وحشت زده از جاش بلند شد و کبوتر سرگردون از این تلف و اون طرف می پرید. سفید برفی هم خودش رو پشت تخت مادرش پنهان کرده بود. خرس به آرامی شروع کرد به حرف زدن و گفت از من نترسین، قصد آزار شما رو ندارم. من از سرما یخ زدم. اومدم تا خودم رو کنار آتیش شما گرم کنم. مادر گفت تفلکی، اگه دلت میخواد بیا کنار آتیش گرم شو. ولی باید مواظب باشی که نسوزی. بعد مادر صدا زد سفیدبرفی برفی روز قرمزی، بیانی اینجا، این خرس نجیب و بیازاره، هر دو اومدن کنار آتیش. کبوتر و برم ترسشون ریخت و کم کم جلو اومدن و کنار آتیش خوابیدن. اون وقت خرس گفت، بچه های عزیز، ممکنه برفه روی پوستم و پاک کنین. بچه ها رفتن و جارو آوردن و تن اونو تمیز کردن. با پاک شدن برفا، پشمای نرم و شفافش آشکار شد. خرس دست و پای خودشو کنار آتیش دراز کرد و برای اینکه رضایت و راحتی خودشو نشون بده چند بار خورخور خور کرد. در مدتی کوتاه چنان ترس اونا از مهمون ناخوندشون ریخته بود که شروع کردن به بازی کردن با اون. بچه ها به پشت اون میپریدن، اونو کف اتاق قلقل میدادن، شاخه درخت و پشت سرش میکوبیدن و پوست زخیمشو نیشگون میگرفتن. وقتی هم که خرس خورخور میکرد بچه ها میخندیدن. خرس اجازه داد اونا هر کاری که دلشون میخواد بکنن. فقط گاهی که حرکت تند و خشنی میکرد تذکر میداد و میگفت آهای بچه ها به من باشین. مبادا نفلم کنین. وقت خوابیدن که شد مادر به خرس گفت اگه مایلی تمام شب و اینجا کنار آتیش بمون. قصد ندارم در این حریر تو را از بمون بیرون کنم. با موندن در اینجا از شر سرمان نجات پیدا می کنی. صبح که شد بچه ها اونو بدرقه کردن. اونم در حالی که روی برف می دوید از اونجا دور شد و به جنگل برگشت. از اون پس اون هر شب در همون ساعت میامد کنار آتیش لم میداد و اجازه میداد بچهها هر طور که دلشون میخواد باهاش بازی کنند. اعضای خونه چنان بهش عادت کرده بودن که تا با اون پوزه سیاهش از در وارد نمی شد کسی در قفل نمیکرد زمستون به پایان رسید. بهار اومد و همه جا پر از سبزه و علف شد و درختای جنگل تن پوش سبز به تن کردن. صبح یکی از روزهای بهار خرص به سفید برفی گفت من دارم اینجا رو ترک می کنم و شما تا آخر پاییز منو نمیبینین. سفید برفی پرسید کجا میری؟ خرس جواب داد: به جنگل میرم که گنجامو پنهان کنم تا کوتوله های خبیث از جای اونها سر در نگارن. در زمستان زمین یخ زده و جای اونها امنه. ولی حالا که گرمای خورشید زمینو نرم میکنه، کوتوله ها به راحتی میتونن زمینو بکنن و اونچه که پنهان کردمو از زیر زمین در بیارن. اگه این گنجا به دست کوتوله ها بیفته پس گرفتن اونها آسون نیست. کوتوله ها طوری گنج منو گم و گور کنن که احدی نمیتونه اونا رو پیدا کنه. وقتی خیرس می میکرد سفید برفی خیلی غمگین شد. موقع بیرون رفتن از کلبه تن خرس به کلون در خورد و کمی از پوستش کنده شد. سفید برفی احساس کرد چیزی مثل طلا رو دیده که زیر پوست خرس برق میزنه. اما مطمئن نبود چون خرس سری دوید و بین درختای جنگل محو شد. مدتی بعد مادر بچه ها رو به جنگل فرستاد تا هیزم بیارن. بچه ها در جنگل درخت بزرگی دیدن که روی زمین افتاده بود. وقتی ایستادن تا بهش نگاه کنن، در اون طرف تنه درخت چیزی رو دیدن که بالا و پایین میپرید. اول متوجه نشدن که چیه، اما وقتی نزدیکتر رفتن، کتوله ی میزهای رو دیدن که صورتی پرچین و چروک داشت و ریشش بین شکاف تنه درخت گیر کرده بود. کتوله مثل عروسکی که به انتهای کشی بسته شده باشه بالا و پایین می پرید. وقتی نمیتونست خودش رو از شکاف تنه درخت رها کنه بعد با اون چشمای ترسناک و بخون نشستش به بچه ها نگاه کرد و فریاد زد. شما دو تا به جای که بیان کمک کنین چرا ایستادین و به من زول زدین؟ روز قرمزی گفت بیچاره آدم کوچولو چرا این بلا سرت اومده؟ کوچوله با عصبانیت جواب داد میخواستم تنه درخت و بشکافم و از تراشه های اون برای پخت و پز استفاده کنم چون یه که زغال بزرگ تمام شام و نهار فقیرانه ما رو میسوزونه ما که مثل شما آدما ها حریص و شکمباره نیستیم برای بریدن تنه این درخت گوم و لای شکاف اون گذاشتم. اما چون گوه لغزان بود ناگهان در رفت. و تا خواستم به جنبم ریش سفید بلندم لای شکاف درخت گیر کرد. حالا هم چنان سفت و محکم شده که نمیتونم خودم رها کنم. تو هم که با اون صورت سفیدت به جایی که کمک کنی داری میخندی. کتوله در ادامه حرفاش فریاد کشید. ولی تو موجود زشتی هستی. با وجود قیافه بدخواه و حرفای کین توزانه کتوله بچه ها دلشون میخواست بهش کمک کنن. جلو رفتن و سعی کردن ریشش رو از شکاف تنه درخت در بیارن. اما موفق نشدن. کتوله پرخاش گفت چی شده نفهمیدم. از شما دو نفر یکیتون زیادیه. تازه میخواین دنبال کسی دیگه هم برین. واقعا که عقلتون رو از دست دادین. سفید برفی گفت اینقدر اوقات تلخی نکن. فکر می کنم ما میتونیم تو رو نجات بدیم. اون قیچی رو از جیبش در آورد و در حالی که صحبت می کرد، اون قسمت از ریش کوتوله رو که در شکاف تنه درخت باقی مونده بود برید. کوتوله وقتی خلاص شد کیسه پر از طلا رو از بین ریشه های درخت برداشت و بعد کیسه رو روی دوشش انداخت و بدون تشکر کردن از بچه ها که بهش کمک کرده بودن راهش رو گرفت و رفت. چیزی بعد از این واقعه روزی سفید برفی و روز قرمزی به ماهگیری رفته بودند. همونطور که کنار ساحل نشسته بودند، چیزی شبیه ملخ دیدن که انگار داشت داخل آب میپرید. وقتی بچه ها بهش نزدیک شدند، متوجه شدند همون کوتوله است. روز قرمزی پرسید اینجا چی کار میکنی؟ چرا میخواستی توی آب بپری؟ کوتوله با صدای بلند گفت فکر کردین من عقلمو از دست دادم؟ نمی این ماهی هولناک چطور منو با خودش میکشه. کشه؟ به ماهیگیری اومده بود اما جهت وزش باد طوری بود که باعث شده بود ریشش دور نخ ماهیگیری بپیچه در همون لحظه ماهی بزرگی تومه قلاب ماهیگیریش رو می و بهش گیر میکنه کنه زورش نمی رسید ماهی رو از آب بیرون بکشه ماهی هم در تلاش برای رهایی خودش کوتوله را به طرف آب میکشید. کوتوله به علف های هرز و بوته های کنار ساحل چنگ میداخت ولی این کار چندان تأثیر نداشت و ماهی همچنان اونو به طرف آب میکشید. دست بر و بچه ها به موقع به کمکش آممدن. اونا با هم پیرمرد و کشیدن و سعی کردن حرکت ماهی رو خنسا کنند، ولی موفق نشدند ریش کتوله به نخ ماهگیری گره خورده بود و چارهی جز بریدن ریشش باقی نمونده بود این بار طوری و بریدن که مقدار کمی ازش باقی مونده بود با اینکه بچهها بچه ها زندگی اونو نجات داده بودن کتوله با خشم فریاد زد این رسم آدمای های نابکاره که دیگرانو از ریخت و قیافه می تازه من از کار اون دفتونم راضی نبودم اما این دفعه دیگه سنگ تموم گذاشتن. اصلا دلم نمیخواد کسی منو با این قیافه زشت و ترسناک ببینه. امیدوارم شما دوتا دچار دو دوچار مصیبت بشین تا بفهمین من چی میکشم. بعد کیسه پر از مرواریدی که لابلای بوتها پنهان کرده بود برداشت. روی کولش انداخت و مثل دفعه قبل بدون خداحافظی رفت و پشت صخره ناپدید شد. دفعه بعد مادر اون دوتا رو به شهر فرستاد تا سوزن و نخ و روبان بخره. اونا باید از جایی میگذشتن که سنگهای بزرگی در اون پراکنده بود. در حال عبور از اونجا چشمشون به پرنده افتاد که به دور نقطه پرواز میکرد. پرنده ناگهان به سمت همون نقطه از زمین هجوم برد. همزمان با حمله پرنده صدای شیونی در اون نزدیکی شنیده شد. بچه ها به طرف اون نقطه دویدن و دویدن که اقاب بزرگی کتوله همون آشنای قدیمیشون رو در چنگال خودش گرفته بود و قصدش با خودش ببره. بچه های قلب زود دست بکار شدن و با تمام توان خودشون کتوله رو از چنگ اقاب بیرون آوردن. بعد از کلنجاری سخت و طولانی بالاخره موفق شدن اونو نجات بدن. همین که قضیه پایان گرفت و ترس کوتوله نمک نشناس ریخت فریاد زد چرا این همه با خشونت منو میکشین؟ نزدیک بود کتم پاره بشه؟ دلقکای زشت؟ خجالت بکشین؟ بعد کیسه جواهرات با ارزش خودشو برداشت و از بین سنگ ها و صخره ها گریخت بچه به ناسپاسی اون عادت کرده بودن و دیگه اهمیتی به این موضوع نمیدادند. اون دوتا به راهشون ادامه دادن و به شهر رفتن و چیزهایی رو که میخواستن خریدن در راه برگشت ناگهان به همون کتوله برخوردن که کیسه جواهراتش رو در گوشه خلبت خالی میکرد کتوله فکر نمیکرد در این ساعت پایانی روز کسی از اونجا عبور کنه و اونو ببینه پرتوب طلایی خورشید روی جواهرات میتابید و تلالو خاصی داشت بچه ها به تماشای جواهرات که به رنگای گوناگون می‌درخشید ایستادند ناگهان سر و کله کوتوله پیدا شد اونکه صورت خاکستریش از خشم سرخ شده بود فریاد زد اینجا وایستادین که چی بشه اون همچنان داشت با لحن خشمگین خودش حرف می‌زد که خرس بزرگ و سیاهی با شتاب از بین جنگل انبوه بیرون اومد کتوله با دیدن خرس با عجله سعی کرد فرار کنه ولی نتونست جایی رو برای پنهان شدن پیدا کنه چون خرس راهشو بسته بود. کتوله با دلهوره و ناراحتی فریاد زد خرس عزیز خواهش میکنم به هم رحم کن اگه قول بدی منو نکشی تمام طلا و جواهراتی که همراه هم دارم به تو میبخشم من موجود کوچیک و ذلیلی هستم حتی کمتر از یه لقمه تو میتونی اون دا تا دختر ناجنسو که گوشت ترد و لذیزی دارن به جای من بخوری. اونا مثل بلدرچینای چاق و خوشمزن. خرس به عجز و التماسش توجهی نکرد و بدون اینکه کلامی بگه با پای چپش زربهی به کتوله بدخواه زد و در جا اونو از بین برد. بعد خیرس دخترا رو از ترس که در حال فرار بودن صدا زد و گفت سفید برفی، روز قرمزی، نه ترسین. میخوام با شما به خونتون بیام. دخترا صدای آشنای خرس و شناختن و وقتی خرس بهشون نزدیک شد، اون دوتا با کمال تعجب دیدن که ناگهان پوست خرس فرو افتاد و در مقابلشون خوش خوشقیافه و زیبا با لباسی مزین به طلا و جواهر ظاهر شده. بعدم گفت، من پسر پادشاه هستم. این کوتوله خبیث بعد از اینکه این جواهراتو از من دزدید، منو تبدیل به خرس کرد. در این مدت در جنگل سرگردون بودم و از گنجینه ها مراقبت میکردم. کوتوله رو هم تا امروز پیدا نکرده بودم تا اونو به درک واصل کنم. مرگ اون موجب رهایی من شد. او هم به سرنوشتی رسید که در خورش بود. چندین سال بعد سفید برفی با شاهزاده و رزقرمزی با برادر اون ازدواج کردند. دو برادر تمام جواهرات و گنجینهای رو که کتوله دوزیده بود با زحمت تونستن پیدا کنن و بین خودشون تقسیم کردند. در مراسم عروسی شادی و شادمانی سراسر اون سرزمین رو فرا گرفت. سفید برفی و رزقرمزی به دنبال مادرشون فرستادن تا به اونها ملحق بشه. مادر و فرزندان سالهای سال با خوشی و خورمی به سر بردند. دو بوته روز را رو هم از جای قبلی در آوردند و در قصر نزدیک پنجره های محل اقامت دوتا خواهر کاشتند. اون دوتا بوته مثل همون زمانی که در باغ کنار کلبه بودند همیشه پر از گلهای سفید و قرمز بودند. کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای افسان صوتی نشانی کانال تلگرامی T نقط M مهران دوستیتی نقط نشانی وبلاگ ما m r n d u s t